اگر آن طایر قدسی ز درم باز آید عمر بگذشته به پیران سرم باز آید دارم امید بر این اشک چوبارم که دیگر برق دولت که برفت از نظرم باز آید آن که تاج سر من خاک کف پایش بود از خدا می طلبم تا به سرم باز آید تا همان در اغبش رهد به یاران عزیز شخصم ارباز نیاید خبرم باز آید گر نسار قدم یار گرامی نکنم گوهر جان به چه کار دگرم باز آید کوسن و دولتی از بام سعادت بزنم گر ببینم که مهن و سفرم باز آید ما نه اشغلغل چنگ از تو شکر خواب سبو و نگر بشن ن بدا باز آید بازید او رزومما در دروخ هم حافظ حمتی تا به سلامت زدرم باز آید